اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی بحث مالکیت فکری جلسه ششم بعد از بیان عدلی کسانی که مخالف با مالکیت فکری و حقوقی که بر این مالکیت مترتبه اکنون نوبت بیان ادله کسانی است که موافق با مالیت فکری هستند و حقوق مالکیت معنوی و فکری رو معتبر و شرعی میدانند موافقین هم برای اثبات نظر خودشون ادله متعددی آوردهاند که فراوان است و انشاءالله به عمده اونها خواهیم رسید و بیان خواهیم کرد یکی از ادله کسانی که موافق با مالکیت فکری هستند تمسک به آیات و روایاتی است که دلالت بر این معنا میکنه و ادعا شده که این اثبات میکند مالکیت فکری را از جمله آیات قرآن در سوره نساء آیه شریفه آیه 29 است که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحیما ای کسانی که ایمان آورده اید اموال خودتون رو بین خودتون به باطل مخورید مگر اینکه داد و ستدی باشد که با رضایت شما حاصل شده است و یکدیگر را نکشید به درستی که خدای متعال به شما مهربان و لطف دارد مهربان است و لطیف و لطف دارد این آیه خطاب به مؤمنین است و می‌فرماید لا تاکلوا اکل او در لغت به معنای خوردن است اما در عرف عام مردم منظور تصرف است و اقتراف و دست درازی کردن و در چیزی وارد شدن و او رو مورد استفاده قرار دادن است. ایضا میان فلانی مال مردم را می‌خورد لازم نیست چیزی را بر دهانش گذاشته و فرو ببرد همین تصرف در شیء رو میگن خوردن رضا چون این تعبیر عرفیست و در میان عرف به سادگی معناش قابل فهم است. گفتش لا تأکل و کن. تصرف نکنید در چه چیزی؟ در انوالی که برای شماست تصرف نکنید بین خودتون در اموالتون یعنی الف در اموال به تصرف نکند به در اموال علف تصرف نکند نه مطلقا تصرف نکند تصرف بل باطل بل باطل قید و تأکلوست بینکم قید انوال است یعنی تصرف باطل نکنید یعنی تصرف کردن در مال دیگری حالا الای استثناء مشخص میکند چه نوع تصرفی جایزد اگر به باطل باشد جایز نیست الا ان تکونه این الا استثناء منقطع است مگر اینکه تصرف شما تجارت باشد به حسب عرف معامله داد و تجارت و تجارت کنه تجارتی که از رضایت شما حاصل باشد نه تجارتی که از روی نارضایتی است اکراه و اجبار و برخلاف میل و برخلاف اراده شما اون نه اون تجارتی که معامله که عرفاً معامله حساب می شود و منشأ تجارت هم رضایت شماست و از روی تیب خاطر و رضایت قلبی اقدامه به او کرده اید خب این استثناء وقتی که به جمله قبل اضافه میشه و متصل می شود معناش اینه که اصل در تصرف در مال دیگران باطل است کسی حق نداره نسبت به مال دیگری تصرف کنه و مورد استفاده قرار بده و در اختیار خودش قرار بده اصل اولی می شود بطلان یا بفرمایید حرمت وضعی مگر اینکه تجارتی صورت بگیرد از روی تیب خاطر و رضایت دل و آرامش نفس و همدیگر را نیز نکشید خدای متعال به شما روح رحمت و لطف میبرزد و با و رحمتش اختلافات شما را و مشکلات شما را حل میکنه خب این آیه‌ای که شماره 29 هست در سوره نسا مورد تمسک کسانی قرار گرفته که موافق با مالکیت معنوی هستند. میگن این دلالت می‌کند بر اینکه اگر کسی مشتریگی آمد و اون اختراعی را که مالک و صاحبش دارد بدون اجازه او از او چاپ بکند، منتشر بکند، بفرمایید مدل سازی بکند، بدل سازی بکند. و بره او رو بفروشه و در اختیار دیگران قرار بده و منتشرش بکنه که منافعی هم دارد این میشه تجارت به باطل که در آیه میگه جایز نیست لا تاکولو نباید تصرف کنید تصرف باطل گفتن مثال مستاق تصرف باطل است که شما آمدید تولید فکری دیگری را که دارای منافع و خواص و است بدون اینکه رضایت او را جلب کنید بدون اینکه بین شما و او تجارتی برقرار بشه دارید درش تصرف میکنید در نتیجه این میشود باطل چه موقع صحیح خواهد بود هنگامی که رضایت صاحب اثر را به دست بیاورید یعنی او در این ای که میکنید جنس او رو کالای او رو کتاب او رو میخرید به او بگید من میخوام کتاب رو چاب بکنم بله یا میخوام از او استفاده های بله استنادی و اقتباس و اخذ بکنم شما اجازه میدید یا نه بلید او چون در اول کتابش نوشته استفاده چاپ و نشر این کتاب بدون اجازه ناشر مثلا یا مؤلف مثلا جایز نیست موقعی جایز می شود که رضایت طرف به دست بیاد او طرف اگر خواس همینجوری رضایت بده که اشکال نداره اگرم رضایت می دهد و در مقابلش عوض می خواهد پس بنابراین باید عوضش رو پرداخت بکنید تا بتوانید از این منافع استفاده بکنید خب چون طبق این آیه رضایت طرفین لازم است در جایی که میخواید تصرف در امر دیگری و نسبت به مال دیگری انجام بدهید. خب گفتن این آیه داله بر همین معنا هست که این یک نوع معامله حساب میشود و همین شرطی که آقای ناشر یا معلف در آغاز کتاب مینویسه و با حروف درشت هم چاپ میکنه که همه ببینن در قسمت اول کتاب آن یا روی آثارشون حک میکنن که بدون عزم و اجازه حق تولید این را نداری پس معلوم میشود که این حق حق شرعی است و مالک اثر میتواند نسبت به این تولید فکری که دارد مالی بگیرد و در مقابل او چیزی را طلب بکند خب به نظر میرسه که که به این آیه متوقف بر این است که اولا این اختراعات، ابتکارات، نوآوریها، فعالیت‌های فکری که منتج به یک اثر جدید میشود مال بر اینها سرق بکند و اینها مال باشند قرآن میفرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل نه از تصرف باطل در اموال شما شده است لذا باید ثابت بشه آیا اینها مال برشون سرق میکند یا نه برای اینکه اثبات کنم آیا این مال هست یا نه خواهید باید به لغت و اور رجوع کنیم که اونا مال به چه چیزی میگویند آیا تعریف مال بر این آثار معندی و فکری هم منطبق میشود یا نه اگر منطبق شد اون میشه مال در نتیجه حالا که مال شد پس ملکیت هم باید در شرط هست که به ملک طرف بیاید خیلی چیزا ولو مال باشن به ملک انسان در نمی آین. مثلا کلب یا شراب مثلا ولو مال انسان هم باشه انسان سرکش خراب شده تبدیل به شراب شده است نه خوب ولو مال هست اما ملک انسان نیست خب اون هم از دایر بحث خارجه پس باید این آثار فکری هم مالیتی ثابت بشه که مال او سپ میکنه هم در مملوک بودن و به ملکی کسی در آمدن مشکلی وجود نداره این ملک طرف میتواند باشد اونگاه در مرحله سوم حق تصرف پیش می که کسی که مالک یک است حق دارد انواع تصرفات رو در او بکند البته تصرفات مشروع مد نظر است شعر اجازه دا باشه و نهی از او نکرده باشد در این صورت بله این طرفی که یک اثری از خودش به وجود آورده تولید فکر کرده اختراعی رو درست کرده او میتواند بگوید من رازی نیستم کسی کپی بکنه از این ای که من درست کرده ام. یا بدلش رو بسازد و او رو نشر بده و بخواد از منافش استفاده بکند در نتیجه مصداق می تواند باشد اشکالی شده از گفتن آقا اینجور محصولات محصولات فکری که وقتی ما میفروشیم تجارت برش سق نمی کنه تجارت نکشیم ما خود دستگاه رو می پوشیم. اما اینکه از منافع فروشش هم میخوایی استفاده کنی اینکه مورد تجارت نیست تجارت عقبی است که بین دو طرف واقع شده شما دستگاه تونو، کتابتونو، سیدی تونو و اون چیزی که تولید کردید به طرف مقابل میفروشید اونم در مقابل پولی، مالی، چیزی به شما میده. از خود اصل مال بله تجارت صرف میکند اما نسبت به نحوه استفاده از این شید شما حق نداری اینو چاپش بکنی یا تولید مثل مثل این بکنی کپی رایت بکنی اینکه عقد برای سرق نمی کند. در نتیجه ادله این آ که نکن، تجارت تراززم میکن تجارت بر او سرق نمی کند تا بخواد آی شامل او بشود. جواب این است که لازم نیست چیزی که، مورد حق کسی واقع میشه حتما خودش یا مبیع باشه یا سمن بلکه امکان داره انسان به واسطه شروط شرعی که در ضمن عقب میگذارد برای خودش ایجاد حق بکند و چون شرط زمن عقب لازم العمل است در نتیجه کسی که مبیعی رو فروخته در مقابل سمن گرفته با اون شرطی که میگذارد در بعضی از تصرفات در اون مبیع برای خودش اختصاص قائل می شود. مثلا ما داریم در عقد بین حضرت زینب سلام الله علیها و عبدالله ابن جعفر که حضرت امیر علیه السلام خود حضرت زینب پیشنهاد کردند من همسرتو میشوم به شرط اینکه هر روز باید بروم برادرم امام حسین علیه السلامو ببینم و همچنین هرگاه ایشون مسافرت میره منم باید باش بروم خب درسته که خود نکاح واقع شده است بین جناب عبدالله و حضرت زینب سلام الله علیها و رفتن نه رکن این طرف نکاهه نه اون طرف ارکان نکاه خود مرد و زن هستن که توافق میکنن که به زوجیت مثلا دائم هم در بیان در مقابل محریهی که مرد قرار میدهد برای خانوم اما این رفتن و نرفتن و شروطی از این قبیل این هیچکوم از ارکان عقد نیست ولی شرطی ضمن عقد و چون لازم العمله پس اگر طرف مقابل از این حق خاص استفاده بکنه میتونه تمسک به شرط خودش بکنه و بگوید به اون شرط که من گذاشتم الان خونه برادرم میخوام برم مثلا یا ایشون مسافرت میخواد بره میخوام برم مسافرت و مثال های البته اینجا مشکلی نداره کسی کتابی میفروشه دستگاهی میفروشه بله در مقابل فروش دستگاه یه مبلغی میگیره من دستگاه فروختم اما به عنوان شرط ضمن عقد حالا یا در لسانش میگوید یا تو اون عقد عقدنامه مینویسد که حق چاپ و نشر و این جور چیزهای که دارای منافعه متوقف بر ازن صاحب اثر است حالا یا معلف و اگر معلف این حق خودش رو به ناشر داده باشه ناشر میتواند این شرط را به بگذارد حالا چه کلمه شرط به کار ببرد یا نبرد که میگه بدون اجازه معلف جایز نیست، بدون اجازه ناشر چاپ کردن و همچنین نشر دادن این کتاب جایز نیست، اجازه لازم است، از لازم است خود این شرط حساب می حتی مثلا اگر بگه کسی مطلب رو از اون میخواد نقل بکنه ولی استناد به این کتاب نمیخواد بده از پیش خودش بگه اونو من. اجازه نمیدم. اگر هم میخواد نقل قول بکنید بگیرید از فلان کتاب دیده هم مثلا خب. بنابراین این چون شرط ضمن نقل میشه لازم العمل رضا تجارتن انترازن شاملش میشود و از این جهت مشکلی نیست یکی دیگر از آیات یا از عدل نقلیه که آوردند گفتن آقا این روایت نوویست که رسول خدا فرمودند لا يحلو دم امرئن مسلمن ولا مالهو الا بتیبت نفسن منهو این روایت در کتاب الحج ابواب المزار باب 90 در ضمن حدیث دوست وسیل وشی های 20جللی جلد ده صفحه 449 این وسائل وشی های چاپ سیجلدی آلبه جلد 14 صفحه 572 همچنین در کتاب و این اینجا باید است کتاب و سات اوواب مکان المسلی با به سوم حدیث یکم این وسائله های 20 جلی جلد سوم حدیث 4۲ چه صفحه 424 این وسائلوشی های سی جلدی جلد پنجم صفحه 120 البته این جمله به صورت همین صورت با یه مقدار کمتر در بسیاری از روایات آمده لا يحلو مال امرئن مسلمن الا به نفسه یا بتیبت نفسه یا بتیبت نفس منهو و در این روایت داره لا يحلو دم امرئن مسلمن ولا ماله الا بِتِیبَتِ نفس منه که این روایت حدیث یکوم باب سوم از عباب مکان مسلی از جناب صدوق هم نعوش شده محمد ابن حسین به اصناد ان زرعه ان سماعه ان علی عبدالله عليه السلام فی حدیثن که آخر حدیث این است حدیث در معتبر است دلالتش هم کاملا واضحه جایز نیست خونه انسان مسلمی مورد تعرض واقع بشود شما نمیتونی کسی را بکشی یا زخمی بکنید و مال او هم حلال نیست که از او بگیری. مگر رضایت خاطر او در کار باشد همراه با تیب نفس او و خوش نفسی او و ذات او همراهی با این عمل باشه مرحوم کلینی هم همین رو با این گفتن محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر، ان ابی اسامه زید شحام ان ابی عبدالله علیه السلام که باز امام صادق نقل می که رسول خدا این چنین گفت خب این در فروع کافی جلده دو در اونجا وجود دارد خب این حدیث گفتیم به این عبارات شبیه به این عبارات در ابواب مختلف فقیقی آمده است خب میگن مال انسان مسلمان جایز نیست حلال نیست مگر از راه نزایت نفس او باشد خب در رابطه با تمسک به این روایت که هم از کلینی نقل شده هم از مرحوم صدوق و در ابواب مختلف هم هست گفتن چیزی که عرفا ارزش دارد و مربوط به دیگرانه و مال حساب میشه بدون رضایتش جایز نیست انسان تصرف در او بکنه فار فرق نمیکنه که مال عین خارجی باشه یا منفعت باشد یا اثر باشد به نظر ارخ بله مالی که مرتبط به دیگرانه و امر با عرض از نظر اغلا به اینا مال میگن لذا مشروط به این است که رضایت خاطر صاحبان او باید جلب بشود چرا چون میگن کسی که این اثر رو به وجود آورده سلطه داره حق داره نسبت به این اثر خودش لذا اگه کسی در اینها تصرف کنه تصرف در حق غیر است لذا رضا نفس او لازم است یعنی بدون اجازه او لایهلون حرام است یعنی جایز نیست و اشکال دارد و این تصرفات جایز نخواهد بود و از طرف شارع امضا نشده است و به بیان دیگر گن مالکیت فکری مثل مالکت مادی محترمه حضا کسی تجاوز به او نمیتونه بکنه حضا هر کم تجاوز بکنه و خسارتی بار باره زامنه مالکیت گفتن از موضوعات عرفی و است اغلاعیست عرف تقیی میکنه چی مال است چی مال نیست و در زمان ما این های فکری از نظر اغلاع عنوان مال شناخته شده و قائل اولی این است که ما موضوع رو از عرف میگیریم و حکم رو از شر اسمانو بنابراین این روایت که میگه لا یهلول ان انیت فی مال غیرهی الا به ازنه که این بازی روایت دیگری شامل موارد ما هم میشود و لذا میبینیم کسی که میاد یه وسیله صنعتی حالا دارو، کتاب همسال اینها رو میاد ایجاد میکنه اخترام میکنه خیلی مال باید خرج کنه ماها باید سالها باید زحمت بکشه تا به این نتجه برسد خب اگر کسی بخواد اینا برداره و برای خودش تولید بکنه و منافعشو به جیب بزند این ظلم فاحش مرتکب شده و چون ظلم از نظر شعر و نقل حرامه هر کسی مرتکب این کار بشه کار حرامی کرده و یک کار خلاف قانون هم کرده است لذا مورد زمانت شرعی هم هست و زامن است که چرا مرتکب چنین کاری شده است در رابطه با مضمون این زبایت هم دوباره همینطور. چون کلمه مال دارد اول از این این آثار فکری و معنوی که مورد اختراع و ابتکار و آثاری که ایجاد می شود باید ثابت بشه که اینا مال هستند حالا که مال هستند چون کسی اینا رو ایجاد کرده پس اون فرد مالکیت بر این شی تواند داشته باشد بعد از اینکه مالکیت ثابت شد پس حق تصرف در این هم تصرفات شرعی مربوط است با اون کسی که صاحب این اثر و اختراع است در نتیجه اگر کسی در او بخواد تصرف بکنه رضایت مالک را باید جلب بکند این دلیل به تنهایی و به همین مقدار است که مطلب رو ثابت کنه لذا لازم نیست ما به قائدی سلطه تمثب کنیم که اون یه دلیل دیگر است که بگیم چون سلطه و حق دارد دیگران نباید در حق این تصرف کنند حتی به ظلم هم لازم نیست تمثب کنیم بگیم این کار ظلم است و چون ظلم حرام است پس منابراین این کار جایز نیست ظلم هم دلیل دیگری می شود البته صرف تیبه نفس داشتن همون که در آیه قرآن آمد که تراز منکم رضایت و خوشنودی باطنی لازم است تیب نفس یعنی اتهه دل موافق است و همگام است و خواهان این مطلب است این یعنی تیب نفس همین مقدار کافی است که مطلب رو اثبات کنند ولی چون صاحب اثر این همه زحمت کشیده کار کرده اختراعی دارد که بعد از مدتها به دست آورده اگر گفت من نخیر این مالم رو در اختیار کسی قرار نمیدم که چاپ بکند تولید بکند و نمونه شو بسازه بدلشو بسازه از روی همین این کار را انجام بده تا به جایی درستد پس بنابراین این نه او میتونه به عنوان شرط ضمن عقد بگوید و بنویسد یا بیان بکند که این جنس را این کالا را این محصول صنعتی را یا هنری را یا فکری را من به شما میفروشم این کتاب را این وسیله و دستگاه را به این قیمت به این ارزش شرطش این که شما حق چاپ و نشر نداری حق تولید ثانویه این را نداری در نتیجه این تیبه نفس حاصل می شود یعنی من تیبه نفسم مشروط به چنین شرطی است که این عم به عنوان شرط ضمن عقد به کار برود لذا لازم نیست که خود تیبه نفس فروخته بشود یا بگیم عدم تصرف طرف عقد نه خیل. طرف عقد یکی جنس و کالای تولید شده است یکی هم که مالی که طرف میپردازد اما عدم استفاده خاص و اشتراط به محدودیت در تصرف این در اختیار آقای صاحب اثر است. بله اگه شرط کن که اصلا استفاده نکنی اون که لغو است چون ملکیت اثرش سلطه بر تصرف است. یا حتی امکان داره کسی بگه نه شما حتی من میخوام اینو مطالعه کنم که هیچی جابجا کنم منتقل کنم آموزش بدهم نه این اجازه حساب اثر لازم ندارد نمیتونونه که حق نداره از به کسی آموزش بدید مگر اینکه این م پول به من بدی. نه بخر کتاب است معلومات است چیزی به ذهن این آمده. مگر اینکه این اثر به ان به ها که با آموزش دادنش به دیگری دیگری به دنبال تورید این اثرات توش خودش بخواد بیفته. این دوره بازگشتش به این است که، همون شرط خاص گذاشته شده است این مبادل شما رو این تولید کنی اگه تولید کنی باید به من امتیاز بدهید باید به من حق امتیاز بدید تو من به شما اجازه بدهم بله و الا صرف متعال کردن و خوندن و عکس گرفتن از رو و به دیگران نشان دادن و آموزش دادن نه اینا تصرفات عادی و معمولی حساب میشه مثلا طرف اینو خریده برای همین ی خودش استفاده کنه و دیگران هم استفاده کنن. نمیخواد دستگاه تولید کنه یا کتاب چاپ و نشر بکنه. البته این دو دلیل منحصر به مسلم است. چون هم در قرآن داره. لا تاکول اموالکم خطاب به مؤمنین آمده مؤمن در قرآن یعنی مسلمان. معنای عام میست تو تعبیر قرآن عمدتا کلمه ایمانه. و مؤمن و یؤمنون میاد. در روایت هم همین دو لا یهلو دم ان مال ان مسلم ان ولا مالهو که باز کلمه مسلم آمده است البته یه روایت داشتیم لا یهلو لعهد این انگتصرفی مال غیرهی الا به که در این روایت کلمه مسلم نیامده است عام است شامل مسلمان و غیر مسلمان میشود یعنی حکم اسلامی است اگر چیزی مال دیگری شد ولی اون مسلمان هم نباشد و کافر است تا رضایت او رو به دست نیاورده اید نمیتوانید در مال او تصرف بکنید لذا این روایت دیگر, دیگر یه قید مسلمان ندارد اما روایت قبلی و آی شریفه قید ایمان و اسلام داشت اما با توجه به این روایت دیگر که چنین قیدی در او ندارد ما میتوانیم حکم را استاد کلی صادر کنیم که بله دیگرانی که صاحب اثرند با هر دین و مذهب میخوان باشند اگر شرط و قیدی و به واسطه او ما رو من میکنم بعضی تصرفات این صحیح هست یعنی چنین شرطی بذاشتن در نتیجه شما حق نداره این کار رو بکنی حرامه و اگر کردی زامنی و اون طرف مقابلم حق داره اصل معامله رو باطل بکنه اینم دلیل دوم بله این دلیل اولی که کسانی که قائلن به اینکه مالکیت فکری و حقوق مترتبه بر اون شرعیت دارد صله الله على سگدهنا محمد و عا طیبی هم